بسن خیلی زشته این شکلیه. شاید تنبلم هست از من خیلی تنبل تره فکر کنم یه خورده کم داره حرف معمولی آدم نمیفهمه همیشم بوی گن می ده بیچاره ولی این فرشته درصی همیشه باش خوبه هیچ وقتممسخرش هم نمیکنه همیشه تحویلش میگیره. منم همش میخواستم مثل فرش درتصای باش رفتار کنم ولی نمیتونستم. هیچ وقت از اثری درباره مامانش نمیپرسیدم باباش پوللار فکر کنم کسی باهاش دوست نمیشه زیاد. مامانم میگفت بعد راه میره بوسنشو میده موقعی را رفتن خندم میگرفت از حرفش بلند میشدم جلوی مامانم با غیر راه میرفتم مامانم چیزیو رو می که طرفم میگفت خجالت بکش فرشتنگ سعیدی همیشه بوی ادکلن میده اومده بودیم خونه ما بعد از امتحان من میخواستم یه مانتو عروسنری بردارم که تو عکاسی عوض کنم لباسامو نمیخواستم با مانتو مغنه مدرسه عکس بگیرم فرشته گفته بود که مانتو مغنمو عوض کنم گفته بود شبیه ننه بلقیس میشی با همه همین همینجوری حرف میزنه من ناراحت شده بودم ولی چیزی بهش نگفته بودم خودش رو تو دستشویی مدرسه عوض کرده بود یه عالمه آرایش کرده بود ادکلن به خودش زده بود با چه وقتی از در مدرسه اومده بودیم بیرون که یه وقت خانم مرادی نازممون گیرمون نندازه من از ترس مامانم تا حالا تو عمرم آرایش نکردم اصلا بلد نیستم بعضی وقتا تو آرسیا یکم از ماتیک مامانم میزنم به لبام. عموغا فکر میکنم شبیه ننه بلقیس میشم مامانم هم که هی با چشش اشاره میکنه پاکش کن هی لبشو گاز میگیره. فرشته رفته بود تو دستشویی حیات قائم شده بود آخه بهش گفته بودم مامانم خوشش نمیاد با دوست موستان برم اینور اونور اونم بلند گفته بود وا عجب مامانی داری یا بعدم گفته بود خاک بر سرت پری بعد هر هر خندزه بود و رفته بود تو دستشویی انگار عمدن می‌خواست مامانم صداشو بشنوه بیاد تو حیات من بی‌دور رفته بودم تو خونه مامانم تو اتاق نشستی داشت با تلفن حرف میزد. حتما با زری از وقتی زری خانومی رو رفتن از این کوچه هر روز دو ساعت با هم حرف میزنن. من دعا میکردم مامانم حرفش تمام نشه یه وقت نخواد بره دستش یه حیات. رفته بودم از اتاق عقبی از تو کومودم تو توسیامو که تازه خریده بودم برداشته بودم. شوالیمو هم که داداشم از ژاپن آورده بود به زور کرده بودم تو کیفم. میخواستم به فرشته بگم داداشم از ژاپن آورده برام یه روسری ژورژت آبیم از خیلی وقته دارم اونم برداشته بودم یادم افتاده بود چند روز پیش دایی یه حلقه فیلم عکاسی داده بود بهم به گفته بود دایی هر وقت تونستی ببر عکاسی چاپش کنن. خودم وقت نمیکنم. اونم از رو تاقچه پشت آینه برداشته بودم، انداخته بودم تو کیفم. اومده بودم تو اتاق وسطی. مامانم هنوز داشت با تلفن حرف میزد. حواسش به من نبود اصلا. نشسته بودم پیشش، گفته بودم: مامان، منو نگاه، دوستم می‌خواد بره عکاسی، عکس بگیره. میذاری باهاش برم؟ تو رو خدا. مامانم گفته بود: ای، پری، کی اومدی؟ کدوم دوستت؟ الان ترشی انداختی زری؟ چه وقتی ترشی انداختنه؟ میذاشتی واسه پاییز دیگه. گفته بودم: پس برم. مامان، برم دیگه. مگه صدامو میشنید؟ بالاخره اجازه داده بود. رفته بودیم شاهی شاهین تو خیابون درختی و اتوبوس رفته بودیم. تو اتوبوس به فرشته گفته بودم یکم از به بهم بزنه. اونم به زور میخواست ادکلن رو بذاره تو کیفم. گفته بود من اگه بفهمم چشم کسی دنبال وسایل میمیچونم نگهش نگهش دارم. رو برده بود تو اتوبوس، تو از بس بلند حرف میزد. همه نگامون می‌کردن. من نگرفته بودم ازش چشمم دنبالش نبود. از حرفش ناراحت شده بودم نزدیک بود گریم بگیره بهم گفته بود منظوری نداشتم آقوره نگیر بابا همیشه همین جوری از آدم اسخایی میکنه خیلی راحته درم میخواست کم اعتماد به نفسم مثل فرشته عصدی بود تو عکاسی قبلا یه پیرمرده عکس گرفت. ولی اون روز یه پسر پسرجوونه اونجا بود یه پیرهن آبی روشن پوشیده بود با یه شلوار پارچهای مشکی موعاشو هم به یه کرده بود چشوشو نفهمیده بودم چه رنگی اون روز خیلی خوب رفتار کرده بود با ما خیلی با بود. با فرشته رفته بودیم تو اونجایی که میتونستیم لباسمونو عوض کنیم. من داشتم لباسامو عوض میکردم. فرشته گفته بود پری میگن پسر خوشگله مگه نه؟ من خجالت کشیده بودم. لبمو گاز گرفته بودم. گفته بودم با بابا میشنوه. زشته تیفونه. گفته بود گمشو ببینم. من اینکه تو خوشب نیومده ازش؟ من جوابشو نداده بودم. این آبروم آبروم حالیش آبروم جوابشو میدادم باز میخواست با اون صداش یه چیز دیگه بگه وقتی اومده بودیم بیرون همش به این فکر کرده بودم نکنه حرفامونو شنیده باشه نکنه فکر کرده باشه اونا رو من گفتم نمیدونم چرا دوست سایه‌شون فکر کنه من پرروام پسر ادش فتوکپی میگرفت واسه کسی به ما گفته بود بفرماید تو اتاق الان میرسم خدمتتون خیلی با احترام رفتار میکرد با آدم اینو به من نگاه کرده بود گفته بود وقتی اومد تو اتاق قزمو پرسیده بود چه جور میخواین خانوما من جواب نداده بودم. عسدی جواب داده بود. من داشتم با گوشه ای بازی بازی می میکردم. فریش تاجسدی صداشو نازک کرده و گفته بود دو تا اکس تک نفره می واسه یادگاری. با یه اشفه حرف میزد که من آب شده بودم از خجالت. بعدم خندیده بود. پسر به من نگاه کرده بود گفته بود بفرمایید بشینید. من وسایلمو گذاشته بودم زمین. تو آینه اونجا رو رو صاف کرده بودم نشسته بودم رو صندلی. خیلی صندلی بدی بود. نزدیک بود ازش بیفتم. اگه میافتادم آبرو میرفت. پسرو اومده بود یه پروژکتور گذاشته بود پشت سرم. خیلی نزدیک گذاشته بود. تقریباً چسبیده بود بهم. به عمدی چسبونده بود. حواسش نبود. فکر شاید تازه کار. آخه خیلی هول بود. گرمم شده بود. خیلی گرمم شده بود. گفته بود لبخند بزنید. لبخند زده بودم. اونم لبخند زده بود. عکسمو انداخته بود. گرمای پروژکتور یه کمی از روسری و سرشونه یه چپ سوزونده بود. پسر خیلی هول شده بود. هزار بار کرده بود. ای hey, گفته بود من شرمندم به خدا تو رو خدا ببخشید اصلا متوجه نشدم هزار بار ازتون عذرخواهی میکنم. من آروم گفته بودم ای بی نداره، چیزی نشده که اونم گفته بود نمی‌دونم چرا اینجوری شد مثلا می‌خواستم یکس خاص ازتون بگیرم باز دستشو کشیده بود به موهاش سرش انداخته بود پایین گفته بودم ای بی نداره اندازه یه سکه سوراخ شده چیزی نیست که فرش ناراحت بود که چرا مانتوی سوخته لال شده بود داشت چپ چپ نگاه میکرد. نزدیک بود بود منو بزنه پسره گفته بود اگه اجازه بدید یه نوشو براتون تهیه کنم. من دلم هر ریخته بود پایین از حرفش. خیلی کیف کرده بودم. بعد یه حرفی زده بودم که الانم که یادم میفته اققم میگیره. گفته بودم نه بابا دست شما درد نکنه خودم میدوزمش یا میدم مامانم بدوزه. بعد اون لبخند زده بود. لبخندش بد نبود ولی من هی داشتم تو دلم خودم و به خاطر حرفی که زده بودم فوش می دادم فکر می کردم الان به خودش فکر میکنه من چقدر عقب مو بدبختم یا چه دختر بیخودیم خیلی از خودم بدم اومده بود حالم به هم خورده بود از خودم از همهی حرفام فکر می کردم اونم داره حالش از من به هم میخوره دیگه نمیخواستم حرف بزنم دلم میخواست زودتر بریم. ولی فرشته بود زود عکس فرشته رو انداخته بود فرشته داشت مختلف ازش میپرسید. با هزار تا ادا. اونم همش گفته بود ببخشید من دقیقاً نمیدونم اصلا یادم نیست فرشته چی میپرسید ازش فقط میخواستم کنم از اون مغازه یهو یادم افتاده بود فیلم دایمو ندادم واسه چاپ از کیفم درآورده بودم گذاشته بودم روی میز گفته بودم بی نم چاپ کنید فرش سدی نگاهی کرد و بهم که نفهمیدم یعنی چی به سره نوشته بود داده بود بهم به گفته بود قبل از اومدن لطفاً تماس بگیرید که خودم مغازه باشم نگاش نکرده بودم فرشته نمیخواست بیاد بیرون گفته بودم من دیرم شده دست فرشته رو کشده بودم اومده بودیم بیرون خوشحال بودم که روسری و مانتومو سوزنده بود مانتومو خیلی دوست داشتم ولی خوشحال بودم که سوخته بود دلم حری ریخته بود پایین از خوشحالی هیچی نشده بود ولی من خوشحال بودم تازه مانتومم سوخته بود تو راه اسدی همش آرنجی زده بود تو پهلوم هی گفته بود خیلی کلکی بی شرف من نفهمیده بودم چرا بهم به گفته بود بی شرف گفته بود چشم پسر رو درآورده بود یا بعد بارنجی زده بود به پهلومو چشمک زده بود گفته بود آره دیگه من بازم نفهمیده بودم آره دیگه یعنی چی من کاری نکرده بودم به خدا نمیفهمیدم منظورش چیه تا برسیم سر خیابون ما همش حرفشو تکرار کرده بود گفته بودم بسته دیگه سدی خوشم نمیاد اینجوری میگی مگه من چیکار کردم زبوشو جمع کرده بود اورده بود جلو و گفته بود ای کاری نکردی شو بابا دیدم داشتی میخوردیش با چشات خیلی ناراحت شده بودم نزدیک بود گریم بگیره هر چی میشه من زود گریم میگیره خد تو سرم ول نکرده بود همش متلک پرونده بود برگشته بود گفته بود چجوری جوری دن مانتو تو سوزوندی؟ دلبری خرکی هم پلک به ما میدونستیم؟ خواهد تو سرت فرش درستدی خیلی خری من لال به دنیا میومدم بهتر بود با اینکه زبون دارم ولی نمیتونم جواب بدم به موقع همش بعدا به ذهنم میاد که باید چی میگفتم با دهنکجی ادای پسر رو درآورده بود گفته بود هزار بار ازتون عذرخواهی میکنم دیگه حرسم در درآورده بود بیشور دوست نداشتم در بیاره گفته بودم آخه همه مثل تو نیستن که كه خواهی بلد نباشن نند نبوده یادت بده دیگه اولش کیف کردم از حرفم فرشته محکم زده بود تو گفته بود دیگه گمشو نمیخوام ریخت تو ببینم همیشه دوباره صورتامو هم میشورم. صورتامو میکوبم رو رخت خوابا. با لاف رویی صورتمو خوش میکنم. گریم ام نمیاد. صورتامو گذاشتم رو دستام. چقدر گشنمه. کاش اونطوری نمیگفتم به فرشته ی سدی. آخه اونم هر چیز دهنش در اومد بهم گفت: "الان هیچ چیز خوشحال کننده پیدا نمیکنم که بهش فکر کنم. همه از ام ازن بدشون میاد. نمیدونم چیکار کنم. دارم دق میکنم. کاش همینجا دق میکردم. میومدن میدیدن مردم، دلشون می برم. مامانم جگرش آتیش میگرف از مردنم موهامو باز میکارم دراز میکشم وسط هم اینجا اینجور نیست سادم دراز بکشه خودمو میزنم به مردن دارم به این فکر میکارم که مامانم مثلا اومده نشسته بالا سرم همینطور زور زده به من که مردم بعد یه رفعه جیغ میکشه آخ جگرم آتیش گرف آخ بچم تنها مرد آخ خدا رو بکش دیگه طاقت ندارم بعد زنداییمو این و داییم میان بالا. انقدر دلشون واسم می‌سوزه، سند این میشه از اینکه منو می با خواهرش مسخره کرده. دادش پیمانم میاد ایران ولی دیر میرسه. از میرسه تو میزنه تو سرش. میگه چرا منو زودتر خبر نکردین؟ هی میزنه تو سرش میگه خاک بر سر من. آبجیم پرپر شد. آبجیم جوون مرد. زن داداشم اون نمیاره. آخه حامل است. کاش پرپر میشدم. من خیلی خولم. هیچی که اشک من میززه روموهام. گلوم درد میگیره. انگار یه چیزی گیر کرده تو گلو. آی، صورت برمی گردم طرف فرش. فرش اینجا یه بویی میده. مامانم وقتی خیلی جوون بوده اینو با زنمون بافتن. مامانم میگه قبل عروسیش بافته. وقتی جوده زندگی میکردن. با زنمون دوست بودن. بعد عروسی میکنه با بابا میان تهران. دستمو میذارم زیر صورتم، هق هق گریه میکنم. کاش ورسدی اونطوری نمیگفتم. من دوستش بودم. بقیه ها همیشه از این حرفا بهش میزنن ولی اون هیچی نمیگه بهشون. اون روز از سر خیابون ما با هم قهر کردیم من اومدم خونه نمیدونم خوشحال بودم یا ناراحت فرشته زده بود تو صورتم با هم, هم قهر کرده بود همش گفته بود من به پسر زل زده بودم از لجش گفته بود در اومده بود آخه پسر اصلا به فرشته نگاه نکرده بود تا حالا هیچ پسری با من اینقدر خوب رفتار نکرده بود آخه اصلا به پسرا نگاه نمیکنم پسرا به من نگاهی میکنن از مدرسه که تعطیل میشیم هیچ وقت جلوی پسرایی که وامیستن رو بوی مدرسه‌مون یا سر کوچه ها رد نمیشم آخه فکر میکردم خیلی زشتم خجالت میکشم پسرا همیشه به دوستان متلک میندازن نه به من اون روزم فکر میکردم شاید اونم همینطوری اونجوری با من رفتار کرده بود شاید با همه همینطوری بود یا چون مونتوموسوونه بود همش باهام مهربون بود اون شب وقتی داشتم میخوابیدم صد دفعه به حرفهایی که به هم زده بودیم فکر کرده بودم صد بار یاد وقتی افتاده بودم که به هم لب زده بود صد بار دلم هوری ریخته بود پایین یاد حرفای خودم که افتاده بودم بلند گفته بودم خاک چیز سرت پری حواسم نبود بلند گفته بودم مامانم پایین اتاق خوابیده بود خور و پف میکرد هی سرمو بلند کرده بودم ببینم حواسش به منه یا خوابیده از مامانم خجالت میکشیدم به خاطر چیزایی که تو ذهنم اومده بود من طرف پنجره حیاط خوابیده بودم تو اتاق جلویی میخوابیم همیشه من هم خجلت میکشیدم هم دلم هوری میریخت پایین خوشحال بودم ولی آخرش همش به این فکر کردم که نکنه اون اصلا به من فکر نمیکنه فردای اون روز نه پس فرداش یعنی همین دیروز از صبح دلم یه جوری بود گفته بود پس فردا عکساتون حاضره یعنی دیروز دیل شوره داشتم ده بار رفته بودم دستشویی. به مامانم گفته بودم میخواام برم کتابخونه خونه پارکشه از پارسال که معلم ادبیاتم گفته بود اونجا ثبت کن میرم اونجا. مامانم گفته بود چرا تو اونجا میخوای بری کتابخونهی طرف خونه دایتم هست دیگه همونجا که سر خیابونیش خونه بزرگت بود من گفته بودم اه مامان اونجا چیه کتاب نداره که هر وقت میرم کتاب بگیرم اونی رو که میخوامو یا نداره یا بردن اینو راست گفته بودم اونجایی که مامانم میگفت هر کتابی رو نداره کتاباشم پاره است همیشه میرم کتابخونه پارکشان کتاب رمان میگیرم بیشتر رمانای خارجی میخونم تازگیها برباد رفتنو خوندم قبل از اونم جین ای رو گرفته بودم خونده بودم هر دوتاشونم خیلی روم تاثیر گذاشته بودن اصلا هر کتابی میخونم تا دو هفته همش تو فکرمه همش بهش فکر میکنم به آدمایی تو داستان به حرفایی که به بهام میزنن من از شخصیت رس باتلر و اون آقایی که تو جین ای ارباب بود بعد با جین عروسی کرد خیلی خوشم میاد اسم اون مرده رو که ارباب بود یادم نیست مخصوصاً این رو که اسمش یادم نیست خیلی دوست دارم خیلی دلم میخواست من جای جین ایر بودم دوست داشتم خانواده نداشته باشم تنها باشم هر جا دوست دارم برم برم یه جایی درس بدم بد یکی آشقم میشد مثل جین ایر دیگه تازه زندایی منم شبیه زندایی جین ایره جین ایر با اینکه تو بچگی سختی کشیده بود ولی وقتی بزرگ شد زندگیش خیلی بهتر شد زندگی من همهش داره بدتر میشه مامانم دیگه چیزی نگفته بود هیچ وقت از بیرون رفتنم راضی نیست هم وقتی میرم هم وقتی می آخونه همش اخماش تو همه رفته بودم از تو کماهنی مامانم کرم سفید رو برداشته بودم. رفته بودم طبقه دوم دستو تو یخ کرده بود. باها یخ کرده بود. یه خورده از کرم مامانم زده بودم به صورتم به نظرم قیافم بهتر شده بود. یکم بیشتر زده بودم. نمیخواستم همون مانتو بپوشم یه مانتوی دیگم داشتم خوشم نمیومد ازش مال بود براش تنگ شده بود داده بود به من مانتو پوشیده بودم. نمیخواستم مامانم شک کنه. دلپیچه گرفته بودم. کیفم انداخته بودم، رودوشم دویده بودم تو حیات. مامانم داشت هایی رو که تو حیاط کرده بود جمع می‌کرد. منو که دیده بود، زده بود تو صورتش. گفته بود: "خوکی عالم، واصه ببینم پری، چی زدی به صورتت؟ چرا انقدر سفید شدی؟" من دمه در بودم، داشتم درو در باز میکردم برم, برم بیرون. مامانم نانه‌ها رو فیل کرده و اومده بود طرفم. گفته بودم: "هیچی، صورتمو شستم با صابون." مامانم گفته بود آره جون خودت ببین چقد ماریده به خودش دختنه دیوونه تو دیوونه برو این خودو نگاه کن؟ خندشم گرفته بود بیا برو بشورش اینجوری می بری کتابخونه نگاش کن تو رو خدا فکر میکردم نذاره برم دیگه گفته بود خوبه دیگه آفرین پری خانم کلا دیگه بزرگ شدی آرایش میکنی واسه من فکر کنم یه عاالمه کرم مالده بودم به صورتم خب شد مامانم دیده بود صورتمو شسته بودم رفته بودم بیرون. همیشه سراغ نگران بودم خودش نباشه تو مغازه. آخه گفته بود قبل از اومدن زنگ بزنید. من نتونسته بودم زنگ بزنم. همش منتظر بودم مامانم بره همون. ولی جایی نرفته بود. هی میگفت پاشو برو زود بیا دیگه. چرا نمیری پس؟ پاشو برو زودم برگرد. یه لالی تلالی هم نکن تو را. نشده بود زنگ بزنم. وقتی رسیده بودم تو عکاسی همون پیرمرده سیبیلو که همیشه ازمون عکس میگرفت داش میرفت بیرون. من بهش سلام کرده بودم. گفته بود سلام دخترم خوش اومدی و رفته بود بیرون. پسر بلند شده بود سلام کرده بود دست کشیده بود به موهاش و خیره شد بمیست. گفته بود دیروز خیلی منتظر شدم زنگ بزنید کیفم و رودوشم جابجا جا کردم بندش رو دو دستی گرفته بودم گفته بودم زنگ می زدم که چی بشه بعد گفته بودم خیلی بد گفته بودم خاک بر سر من هر سنان بلد نیستم که یه دفعه سرش اورده بود بالا مونده بود چی بگه گفته بود نه نه منظورم اینه که آخه به خاطر اینکه عکستون خراب شده از شما انداختم بیچاره مونده بود چی بگه دلم میخواست بمیرم با اون حرس زدنم گفته بودم من نتونستم زنگ بزنم نشد آخه مامانم همش خونه بود انگار باید همه چیزامو بهش میگفتم اینو که مامانم همش خونه بود ای کاش من لال به دنیا میومدم من بزرگ نمیشم اصلا مامانم راست میگه گفته بود آهان بله بله درست میگید بعد خندید لبخند زد من دلم هوری ریخته بود پایین کلا اونجا که بودم همش دلم هوری می‌ریخت پایین ولی پیچم خوب شده بود حالم خوب بود اصلاً هم در مورد فرشته عصدی نپرسیده بود درباره عکسشم چیزی نگفته بود منم اصلا یادم نبود اصلا یادم نبود پری روزش با عصدی اومده بودم الان داره یادم میاد گفته بود خوب حالا اجازه بدید یه عکس دیگه ازتون بگیرم گفته بودم نه نه نمیخوام دیگه دیگه لازم ندارم همش گفته بود خواهش میکنم بذارید یه عکس دیگه ازتون بندازم من نذاشته بودم نمیخواستم با تو مغنه عکس بگیرم فرشته اصدیم نبود بهش عکس یادگاری بدم بعدم که فهمیدم عکسهاو واسه خودش میخواسته یه دفعه گفته بود عجب خنگی هم من تو رو خدا بفرمایید بشین اصلا حواسم نیست گیجم کلاً به خودش گفته بود خنگ مثل من گفته بود اصلا دلم نمیخواست برم ولی گفته بودم من عجله دارم میشه پس عکسای رو که داده بودم چاپ کنید بدید من برم اصلا نگاش نکرده بودم اخ کرده بودم گفته بود تو رو خدا بفرمایید بشینید گفته بود ببخشید ناراحت شدیم ناراحت نشده بودم خوشحال بودم دلشوره داشتم خجالت میکشیدم نشسته بودم رو صندلی کنار میس نشسته بودم رو لبه صندلی گفته بودم نه ناراحت نشدم اون عکسا رو هم خراب کردید محسی که بود گریم بگیره نمیدونم چرا تو دلم آشوب بود خندش گرفته بود موهامو از جلوی صورتم زده بودم زیر مغنعه سر مغنمو صاف کرده بودم داشتم به مزایکهای زمین اونجا نگاه میکردم پای راستم و تکون میدادم نشسته بود پشت میزش رو صندلیش بازم خندیده بود گفته بود اون عکساتون جاش امنه چون دستگاهمو خراب بود دادم عکاسی اون یکی اموم. آخه اینجا مال یکی از موهامه همون آقایی که رفت بیرون اون موقعی که شما اومدید گفته بود اشکالی نداره که زنگ بزنم به یکی از دوستام بیاد با ماشینش ما رو برسونه تا عکاسی اون اموم خیلی خوشحال میشم اگه این افتخار رو به من بدید. اگه این افتخار رو به من بدید، هزار بار این جمله رو با خودم تکرار کرده بودم. کیف کرده بودم از حرفش. خیلی با عدب با من حرف میزد. من خیلی خوشم اومده بود. از اونجوری حرف زدنش، از همه حرفش خوشم میومد. وقتی اونطوری هم حرف میزد فکر میکردم یه آدم دیگم. گفته بودم: "نه، بله، باشه، اشکال نداره." بعد تندی گفته بودم: "شما میاد دیگه؟" شما میاد دیگه خوک بر پر سرت پری پری خیلی خری خیلی خولی همش چرت و پرس میگم اصلا واسه چی گفته بودم اون حرفو کی چی بشه فقط میخواستم یه چیزی بگم دیگه همیشه هم همینجوریام گوشه تلفن تو دستش بود گفته بود آره دیگه پس چی که میام شما رو با دوستم تنها بفرستم بعدم خندیده بود خیلی با مهربونی گفته بود اینا رو ولی من داشتم تو دلم فوش میدادم به خودم به اونم داشتم فوش میدادم نمیدوندم چرا اخ کرده بودم شماره دوستش رو گرفته بود. باهاش حرف زده بود. من داشتم به دور و برم نگاه می‌کردم. مغازه‌شون خیلی کثیف بود. خیلی قدیمی بود. رو دیوار عکس مردی بود. یه خورده شبیه همون پیرمرد صاحب اونجا بود. مثل اون سیبیل داشت و کراوات زده بود. دیوارهای مغازه‌شون رو کاغذ دیواری کرده بودن. مثل خونه عمو بزرگم. همه وسایلشون قدیمی بود. داشتم با سیم موزیکای اونجا شکلی چیزایی رو پیدا می‌کردم. مثلاً شکل یه کفش پاشنه بلند پیدا کرده بودم. به دوستش گفته بود تخت گاز بیا ما عجله داریم بعد خداحافظی کرده بود گوشی رو گذاشته بود حرفای قبلیشو نشینده بودم حواسم نبود گفته بود نگران نباشید من زودی تو خونه بعدم گفته بود اون عکس بابابزرگمه پنج سال پیش فوت کردن ایشونا مکارس بودن بعد از فوتش اینجا و اون یکی عکاسی که تو خیابون جمهوری رسید به اموهام به پدر منم خونش رسید که پدرم خونه رو فروخ رفت گفته بودم کجا ژاپون قاه قاه خندیده بود گفته بود ژاپن؟ نه چرا ژاپن؟ واسه مورد سوزوندن؟ وا <تصفح> خندیده بود میخواستم بگم داداش منم ژاپن زندگی میکنه نگفته بودم گفته بودم هیچی همینطوری. طوری؟ نگاه کرده بودم به موزایکا. نمیم چرا گفته بود؟ واسه مورد سوزوندن مگه هرکی میره اونجا واسه مورد سوزوندن میره نفهمیدم یعنی چی؟ ولی داداش من از این کارا نمی کنه. نمیدونم کارش چیه اونجا ولی مطمئنم از این کارا نمی کنه. از اون حرفش ناراحت شدم الان که دارم بهش فکر میکنم. ولی واقعا کار داداش پیمانم چی اونجا؟ نمیدونم که. او حوصله ندارم بهش فکر کنم. گفته بود بله داشتم عرض میکردم پدرم رفته کانادا. منم میخواستم برم پیشش که حالا ببینیم خوده چی میخواد بعد از این. بعدم لبخند زده بود. گفته بود ما کجا زندگی میکنیم؟ یعنی الان با مادرم کانادا زندگی میکنیم. شما کجا ساکنین جسارتان؟ گفته بودم ته همین خیابون تو خیابون شیشوم کوچه هفتم. گفته بودم شما امه ندارید؟ گفته بود نه امه ندارم چطور؟ واسه چی پرسیدین؟ گفته بودم؟ هیچی همینطوری؟ لبخند زده بود. نمیدونستم چی بپرسم ازش خوب ولی میدونم یه دلیلی داشت که اونو پرسیدم. الان یادم رفته. گفته بود من شما رو قبلا که یکی دوبار اومده بودید اینجا دیده بودم عکس پرسونلی انداخته بودید گفته بودم ولی من که شما رو ندیده بودم گفته بود ببخشید خب چرا عصبانی میشید؟ گفته بود؟ دقیقاً اسمتون رو میتونم بپرسم؟ من رضام، رضا شیرازی. گفته بودم پری ایلانلو. بعدم خدامو کشته بودم، پرسیده بودم شما درستتون رو تموم کردید؟ گفته بود راستش دانشجوی اینصرافی‌ام، ادبیات می‌خوندم تو دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، ورودی و پنجم. ولی چون می‌خواستم برم پیش پدرم، دیگه ولش کردم. الانم که دنبال خریدن سربازیم خدمت نرفتم. به قول مادرم آدم نشدم. بعدم خندیده بود گفته بودم چه حیف؟ گفته بود چی حیف که آدم نشدم؟ بعد قاه قاه خندیده بود. گفته بودم نه. دوستش اومده بود تو مغازه. دیروز فهمیدم چشمش آبیه ولی بیرون که رفتیم رنگ چشمش عوض شده بود. به دوستش سلام کرده بود و با هم دست داده بودن. بعد رفته بودیم بیرون. در مغازه شو قفل زده بود. سوار ماشین دوستش شده بودیم. یه دختریم عقب نشسته بود. ریزه دویده بود در باز کرده بود من نشسته بودم عقب. چند خوشحال بودم، هیچ رخ اونجوری نبودم، گیج بودم، دلم هی هر میریخ پایین از خوشحالی. رزا جلو نشسته بود، ماشین دوستش مثل ماشین داین بود، همون رنگی، زیات سرمه دختری که عقب نشسته بود، بعدا فهمیدم نامزد دوست رزاست، خیلی خوشگل بود، و فکالی کرده بود از روسریش گذاشته بود بیرون، ناخوناشم بلند کرده بود، اولش خودشو گرفته بود، وقتی رسیدیم جلوی اون عکاسی رضا و دوستش پیاده شده بودن رفته بودن طرف عکاسی اون دختره گفته بود ببخشید اسم شما چیه؟ بعدم دیگه شروع کرده بود به حرف زدن اسمش سریا بود من نتونسته بودم بگم اسم دختر همسایه قبلی مثل اون سریاس چند بار اومده بودم بگم ولی نشد تون تون حرف میزد بیست سه سالش بود اون پسره دوست رزا پسرداییش بود که دو سال بود باهاش نامزد شده بود ولی مادر شوهرش عذیتشون و نمیزاشته اینا برن سر خونه زندگیشون بابای دخترم گفته یا طلاق میگیرین یا همین ماه باید عروسی بگیرین. اینا میخواستن تو خونه عروسی بگیرن و مامان دخترم گفته نه. من تو دلم همه‌اش میگفتم خوش به حالش. دلم میخواست منم نامزد داشتم. دلم میخواست ریزا نامزدم بود. اون وقت اگه مادر شوهرم ازیتم میکرد ناراحت نمیشدم اگه نامزدم رضا بود. اولش فکر کرده بودم از این دختر افادیاس که انگار دماغ فیل افتادن. بعد تا رضا و دوستش بیان کل زندگیشو برام تعریف کرده بود. هم گفته بود قیافه بانمکی داری تو دلبروی اون موقع فکر می کردم راست میگه که با قیافم ولی الان فکر کنم مثل زندهیم علکی تعریف کرده بود ازم حتما الان داره به قیافم فحش میده اصلا به جهنم برا مهم نیست بذار همه فحش بدن دیگه هیچی برا مهم نیست شاید اینجا خودم خودمو دار بزنم شاید دارویی سمی چیزی بگیرم بخورم همینجا بخوابم دیگه هم می دار نشم رضا و دوستش سوار شده بودن. راف افتاده بودیم. من و دختره داشتیم عکسایی رو که چاپ شده بود نگاه میکردیم. اکسای دایمینا بود که عید امسال لفته بودن ده پیش با وزرگم اینا. فرشادم با بود. عکسای فرشادو رو بهش نشون داده بودم. گریهش گرفته بود. من خندم گرفته بود.